فصل چهارم کرم زرد بدون راه راه تنها و پریشان بود هر روز در جستجوی راه راه به طرف ستون می رفت و شب غمگین باز می گشت اما از اینکه هیچ وقت او را ندیده بود تا حدی حد آسود خاطر بود زیرا از این می ترسید که مبادا اگر او را ببیند به دنبالش بشه تابد در حالی که میدانست نباید چنین کند میل داشت کاری بکند هر کاری به جز این انتظار نامعلوم با حسرت آهی کشید و گفت. من واقعا از دنیا چه میخوام؟ انگار که خواستم هر چند دقیقه فرق می کند. اما میدانم که باید بیش از اینها باشد. عاقبت خسته و حیران گشت و از هر آنچه که آشنا بود دور شد. یک روز کرم درختی خاکستری رنگی که وارونه از شاخه درختی آویزان بود او را متعجب ساخت. به نظر میآمد که در یک جسم مویی گرفتار شده باشد به او گفت: مثل اینکه به دردسر افتادی میتوانم کمکت کنم؟ نه عزیزم من من باید این کار را بکنم تا یک پروانه بشوم همه درونش فروریخت فکر کرد پروانه این کلمه به من بگو آقا پروانه چیه؟ همون است که تو باید بشوی پروانه با بالهای زیبا پرواز می کند و زمین را به آسمان می پیوندد و فقط شهد گلها را می نوشد دانه های عشق را از گلی به گل دیگر میبرد. بدون پروانه ها طولی نخواهد کشید که دنیا گلهای معدودی خواهد داشت زردی آرزو کنان گفت این نمیتواند حقیقت داشته باشد چطور میتوانم باور کنم که درون تو یا من یک پروانه است در حالی که همه آنچه که من میبینم یک کرم کرکدار است متفکرانه پرسید چطور یک کرم درختی پروانه میشه؟ تو باید آنقدر مشتاق پرواز کردن باشی که با میل و رقبت از کرم درختی بودن دست بکشی کرم زرد در حالی که سه کرمینو که از آسمان افتاده بودند به یاد می پرسید منظورت مردنه؟ او جواب داد آره و نه آنچه به نظر می رسد این است که تو می میری اما آنچه واقعی است این است که تو باز هم زندگی خواهی کرد زندگی عوض میشه اما از بین نمیره آیا این از زندگی آنها که می میرند بدون اینکه هیچ وقت پروانه بشوند متفاوت نیست؟ کرم زرد با تردید گفت و اگر من تسلیم بگیرم که پروانه بشونم چه کار باید بکنم؟ به من نگاه کن من دارم یک پیله می سازم می دانم که به نظر می آید که دارم مخفی می شوم اما پیله راه فراری ندارد پیله یک منزل بین راه است که در آنجا تغییر صورت می گیرد پیله یک مرحله بزرگ است زیرا تو دیگر هیچ وقت نمیتوانی به زندگی کرم درختی بازگردی در حین تغییر به نظر تو یا هر کسی که با دقت نگاه کند چنین می رسد که چیزی اتفاق نمیفتد اما پروانه در حال به وجود آمدن است فقط وقت میگیرد و یک چیز دیگر هم هست وقتی یک پروانه هستی می توانی واقعا عشق ببرزی اشقی که زندگی جدیدی را به وجود می آورد. این بهتر از همه ای آن چیزهایی است که آن کرمهای درختی در آغوش هم فرو رفته میتوانند انجام دهند. کرم زرد گفت: اوه، بگذار بروم و راه راه را بیاورم. اما متاسفانه میدانست که او به قدری در روی ستون جلو رفته که در به وی امکان ندارد. دوست جدیدش گفت: قصه نخور، اگر تبدیل شوی میتوانی پرواز کنی و به او نشان بدهی که پروانه ها چقدر قشنگند. شاید او هم بخواهد که پروانه بشود زردی غمگین بود اگر راه را برگردد و من آنجا نباشم چه؟ اگر هویت جدید مرا را تشخیص نده چه؟ اگر فرزن تصمیم بگیرد که یک کرم درختی باقی به چه؟ لاقل به شکل کرم‌های درختی میتوانیم کاری انجام بدهیم میتوانیم بخزیم و بخوریم میتوانیم به طریقی عشق ببرزیم آخر دوتا پیله چطور میتوانم با هم باشند؟ گیر کردن توی یک پیله چه وحشتناک است چطور میتوانست تنها زندگی را که میشناخت به مخاطره بیاندازد در حالی که خیلی بعید به نظر میرسید که زمانی تواند یک موجود بالدار باشکوه باشد با دیدن کرم درختی دیگری که به این مسئله آن اندازه ایمان داشت که پیله خودش را بتنند و امید عجیبی که او را از ستون دور نگه داشته بود و شکی که از شنیدن داستان پروانه ها به او دست داده بود چه باید میکرد کرم درختی مخاکستری به پوشاندن خود با تارهای ابریشمی ادامه داد در حالی که آخرین تار را به دور سر خود میتنید فریاد زد تو پروانه زیبایی خواهی شد ما همه منتظرت هستیم و زردی مصمم شد که برای پروانه شدن خود را به مخاطره افکند برای کسب شهامت درست پهلوی همان پیله آویزان شد و شروع به تنیدن تار خود نمود. تصورش را بکن، من حتی نمیدانستم که میتوانم این کار را انجام بدهم این خودش یک دلگرمی است برای اینکه در مسیر صحیح قرار گرفتم. اگر من ماده ساختن پیله را درون خود دارم، لابد ماده لازم برای پروانه شدن را هم دارم. فصل پنجم. راه راه این بار خیلی سریعتر پیشرفت کرد. او بزرگتر و قویتر شده بود چون مدتی استراحت کرده بود. از همان اول تصمیم گرفت که به قله برسد. او مخصوصا از تلاقی با چشمان خزندگان دیگر اجتناب می‌ورزید زیرا میدانست که چنین برخوردی چقدر مخرب می‌تواند باشد سعی کرد که به زردی فکر نکند خود را منضبط ساخت که نه چیزی احساس کند و نه گیج منصرف شود راه راه از نظر دیگران فقط منضبط نبود او بیرحم بود حتی در بین بالاروندگان استثنایی بود او فکر نمی‌کرد که علیه کسی باشد فقط داشت کاری میکرد که اگر میخواست به قله برسد مجبور بود بکند. اگر کرمی شکایت میکرد میگفت اگر موفق نمیشوید مرا سرزنش نکنید. زندگی سختی است فقط تصمیم بگیرید و اراده کنید. تا اینکه روزی به نزدیکی مقصدش رسید. راه راه موفق شده بود اما سرانجام وقتی نور از بالا به پایین تابید از خستگی زیاد قوایش رو به اتمام بود. در این ارتفاع تقریبا هیچ حرکتی نبود. همه با تمام مهارتی که یک عمر بالا رفتن به آنها آموخته بود موقعیت خود را حفظ می کردند هر حرکت کوچکی وحشتناک می نمود. هیچ گفتگو و مراوده ای نبود تنها محیط خارج لمس می شد رابطه آنها با هم مثل رابطه پیله ها بود تا اینکه روزی راه راه شنید که خزنده بالای سر او می گوید هیچیک از ما بدون خلاص شدن از شر آنها نمی توانند بالاتر برود چیزی نگذشت که او فشار و تکان شدیدی را احساس کرد سپس تنین فریادها و بدنهایی در حال سقوط شنیده شد و به دنبال آن سکوت نور فراوانتر و سنگینی کمتری از بالا احساس کردید از این آگاهی تازه به راه راه احساس بسیار بدی دست داد راز ستون داشت آشکار می شد. او حالا می دانست که بر سر آن سکرم درختی چه آمده بود او حالا میدانست که چه چیزی باید همیشه روی ستون اتفاق افتد. عجز و ناکامی وجود راه, راه را فرا گرفت اما همین که داشت تصدیق می کرد که این تنها راه سعود است صدای ظریف و آاحص را از بالا شنید. اینجا اصلا چیزی نیست دیگری جواب داد، ساکت باش، احمق آنها صدایت را در پایین ستون میشنوند ما آنجایی هستیم که آنها میخواهند باشند این اون چیزی که اینجاست راه راه احساس کرد بدنش یخ زده اینقدر بالا باشی و اصلا بالا نباشی فقط از پایین به نظر خوب می آمد آن صدای آهسته دوباره به گوش رسید آن طرف را نگاه کنید یک ستون دیگر آنجا هم هست همه جا هست راه راه عصبانی و نومید شده بود با ناله گفت ستون من تنها یکی از هزار ستونه میلیونها ها کرم درختی به سوی هیچ مقصدی بالا می روند واقعا خطایی در کاره اما چه چیز دیگری آنجاست زندگیش با کرم زرد در فاصلهی بس دور مینمود؟ نه کاملا اینطور هم نبود کرم زرد گذاشت تا تصور او وجودش را پرسازد تو یک چیزی می دانستی این طور نبود آیا صبر کردن نشانه شهامت بود شاید حق با او بود ای کاش با او بودم فکر کرد میتوانم پایین بروم اگر چه مسخره به نظر می آیم، اما شاید این بهتر از آن چیزی است که دارد اینجا اتفاق می افتد ولی رشته افکارش در اثر فشاری که از همه طرف بر بدنش وارد شد پاره گشت به نظر می رسید که هر کس داشت آخرین سعی خود را می کرد تا راه ورودی به گل را بیابد اما با هر فشاری قشر بالا سبکتر می شد یک کرم درختی نفستنان گفت تا همه با هم سعی نکنیم هیچ کس به قله نمی رسد. آنها نمی توانند برای همیشه ما را در پایین نگه دارند اما قبل از اینکه بتوانند اقدام کنند فریادها و همهمه همه نوع دیگری به گوش رسید راه را تا خود را به کنار ستون برساند و علت را بفهمد یک موجود بالدار زدرنگ و درخشان آزادانه به دور ستون حرکت می کرد منظره عالی بود چطور توانسته بدون بالا رفتن تا این ارتفاع بیاید وقتی راه راست سرش را با فشار بیرون آورد گویی که آن موجود او را شناخت زیرا پاهایش را دراز کرد و تلاش نمود که او را بگیرد راه راه درست قبل از اینکه از ستون بیرون کشیده شود خودش را نگه داشت آن موجود درخشان او را رها ساخت تا برود و غمگینانه به چشمهایش نگاه کرد آن نگاه حیجانی را در راه راه به وجود آورد که از ابتدای دیدن ستون تا کنون حس بود کلمات گذشته به ذهنش بازگشتند فقط پروانه ها آیا این یک پروانه است و معنی این چه بود؟ در قله آنها میبینند؟ همه اینها خیلی عجیب بود و با این حال مثل اینکه انتظار میرفت که چنین باشد و آن چشم ها با نگاه زردی آیا میتوانست باشد؟ چه افکار غیر ممکنی. اما هیجان درونی متوقف نمیشد، احساس خوشحالی کرد می توانست به نحوی فرار کند می توانست توسط دیگران به کنار زده شده و از محل دور گردد ولی به تدریش که این احتمال واقعیت یا فکر دیگری به ذهنش رسید حسیت نباید این طوری فرار کند وقتی به چشمهای آن موجود نگاه میکرد، به سختی می توانست اشقی را که در آنها می دید تحمل کند احساس بیارزشی کرد میخواست عوض شود و جبران همه دفعاتی را که از نگاه کردن به دیگران امتناع ورزیده بود بکند سعی کرد آنچرا که احساس کرده به او بگوید از تلاش دست برداشت دیگران طوری خیره به او نگاه میکردند که انگار دیوانه شده است فصل ششم برگشت و شروع به پایین رفتن کرد این دفعه چنبره نشد تمام قد کشید و مستقیما به چشمان هر کرم درختی نگاه کرد مبهوت آن همه تنوع و زیبایی شده بود تعجب کرد که چرا قبلا هرگز به آنها توجه ننموده است به گوش هریکی از کرمها زمزمه میکرد من الان آن بالا بودم هیچ چیز آنجا نیست اکثرا توجهی نمیکردند آنها سخت مشتاق بالا رفتن بودند یکی گفت. گربه دستش به گوش نمیرسه میگه بو میده. تنه میزنه، میاندم که هیچ وقت به اون بالا نرسیده. اما بعضی ها شکه شده بودند و حتی از بالا رفتن دست کشیدند تا صدای او را بهتر بشنوند. یکی با غص اجوا کرد، این حرف را نزن حتی اگر درست باشد. چه کار دیگری می بکنیم؟ پاسخ راه را همه از جمله خودش را شکه کرد. میتوانیم پرواز کنیم؟ می توانیم پروانه بشویم آن بالا هیچ چیز نیست و اهمیتی ندارد وقتی پیام خودش را شنید فهمید که چقدر غریزه به اوج رسیدن و متعالی شدن را بد تعبیر کرده بود برای به اوج رسیدن باید پرواز کرد نه اینکه فقط بالا رفت راه را سرمست از این شادمانی که درون هر کرمه درختی یک پروانه میتواند باشد به هر یک نگاه می کرد اما واکنش ها بدتر از قبل بود توی چشمها ترس میدید آنها دیگر نایستادند که گوش بدهند یا حرفی بزنند این خبر با و خوشحال کننده باور نکردنی بود آنقدر زیادی خوب بود که نمیتوانست حقیقت داشته باشد و اگر حقیقت نداشت چه نور امیدی که ستون را روشن ساخته بود تیره گشت همه چیز مبهم و غیر واقعی به نظر رسید راه پایین بی اندازه طولانی بود رویای پروانه شدن محو شد شک و تردید سراسر وجود راه راه را فرا گرفت ستون ابعاد وحشتناکی به خود گرفت او به سختی و کورکورانه به مبارزه ادامه داد به نظر می آمد از دست دادن ایمان اشتباه باشد اما ایمان آوردن نیز غیر ممکن می نمود خزنده ای به تمسخر گفت چطور توانستی چنین داستانی را باور کنی زندگی ما زمین و بالا رفتن است به ما کرم ها نگاه کن درون ما نمیتواند پروانه باشد حد اکثر استفاده از زندگی را به عنوان یک کرم درختی بکن و از آن لذت ببر راه را با حسرت گفت شاید حق با اوست من هیچ دلیلی ندارم آیا تنها به این دلیل بالا رفتم که به آن خیلی احتیاج داشتم و با درد و اندوه در جستجوی چشمانی که به او اجازه نجوا بدهند به پایین رفتن ادامه داد من یک پروانه دیدم زندگی مفهوم بیشتری می تواند داشته باشد سرانجام یک روز او به پایین رسید. فصل هفتم. راه راهرا خسته و غمگین به محل قدیمی جایی که زردی و او به دنبال هم جست و خیز کرده بودند خزید. زردی آنجا نبود و او به قدری خسته بود که توان دورتر رفتن را نداشت. چنبره زد و خوابید. وقتی آقابت بیدار شد دید که آن موجود رنگ با بالهای سباکش او را باد میزند تعجب کرد آیا این یک رویاه اما آن موجود رویایی خیلی واقعی عمل میکرد او را با شاخکهایش نوازش میداد و بالاتر از همه به قدری با عشق و محبت به او نگاه میکرد که او کم کم به احتمال صحت آنچه که درباره پروانه شدن گفته بود اعتماد نمود او چند قدمی به جلو رفت سپس به عقب پرید چندین بار این کار را تکرار کرد گویی که او باید به دنبالش برود و راه راه چنین کرد به شاخه ای رسیدند که از آن دو کیسه پاره شده آویزان بود آن موجود پی در پی سر و بعد دمش را به درون یکی از آنها فرو می کرد سپس نزد او پرواز کرده و او را لمس مینمود شاخکهایش لرزید و راه راه فهمید که دارد صحبت می کند راه راه نمی توانست ترفی بزند کم کم به نظر می رسید که بفهمد به طریقی می دانست که چه باید بکند او از درخت بالا رفت هوا تاریک و تاریکتر می شد و او می ترسید. احساس کرد که باید قید همه چیز را بزند و زردی منتظر ماند تا اینکه یک روز پایان علیه در رشیری بیست و یک هفته دو